فصل 19 هم. روز بعد حوالی ظهر بالاخره از اروسی برگشتند خانم ترینر چنان قاطی کرده بود که به سختی میتوانست حرف بزند گفت چرا زنگ نزدید آنجا مانده بود تا با چشم خود ببیند که مشکلی پیش نیامده و صحیح و سالم برگشتند از ساعت هشت صبح به آنجا رسیدم. صدای پایش رو از کفپوش راه رو می شنیدم که بالا و پایین می رفت. ده بار برای هر دو نفرتون پیام فرستادم. بعد وقتی به خونه دیوار زنگ زدم به هم گفتن که مردی که با سندلی چرخدار بود رفت هتل. من فهمیدم که تو یوتیوبان تصادف نکردید. ویل گفت. آها آه مردی که با سندلی چرخدار بود. <تص> چه عالی. اما پیدا بود نراحت نشده است. بی خیال و راحت بود. خماری صابگاهیش را با شوخی می گذراند. با اینکه حدس حدث می زدم درد هم دارد. فقط وقتی مادرش لور را دعوامی کرد لبخند از لب ویل دور شد. ویل وسط پرید و به مادرش گفت هر داد و بیدادی دارد سر خودش بکشد. چون رفتن به هتل تصمیم او بود. مادر. تا جایی که من می دونم یه مرد سی و سال اختیارش دست خودشه. و مجبور نیست به کسی حساب پس بده که چرا شبا تو هتل موند حتی به پدر و مادرش خانوم ترینر به دو نفرشان زل زد چیزی زیر لب زمزمه کرد که به گوشم رسید عدب هم خوب چیزی است. بعد از اتاق بیرون رفت لو کمی جا خورد ولی ویل جلو رفت و نجوا چیزی به او گفت و اینجا بود که من متوجه نکته شدم صورت لو کمی سرخ شد و خندید. از آن نخندهی که آدم می خندد ولی می که وقت خندیدن نیست. خندهی که بوی تبانیا هم دسته میداد. سپس ویل به لو گفت که سخت نگیرد و راحت باشد. به خانه برود و لباس عوض کند و اگر خواست یک چرت بخوابد. نمی تونم با کسی که از قیافش پیدست شیطونی کرده برم دور قلعه بچرخم. من با لحن عجب آمیزی گفتم شیطونی کرده؟ لو گفت <تصفيق> نه اونجور که تو فکر میکنی بعد با شالش به من زد و کتش را قاپید تا برود ویل گفت با ماشین برو برگشت برات راحت تره. ویل را دیدم که با چشمانش او را تا در پشتی دنبال کرد از همان یک نگاه یک دنیا مطلب دستگیرم شد بعد از رفتن لو ویل کمی بیحوصله شد انگار منتظر بود تا مادرش و لو بروند و خودش را رها کند من با دقت او را زیر نظر داشتم لبخند که از صورتش رفت دیدم چهرش را دیگر دوست ندارم صورتش کمی لک لک شده بود وقتی فکر میکرد حواس کسی به او نیست اخمهایش در هم میرفت حتی از جایی که بودم میدیدم که مو بر تنش راست شده است زنگ خطری در وجودم به صدا درآمد ضعیف ولی گوشخراش بود شد وین خوبی؟ خوبم شروعش نکن به بهم نمیگی کجا درد داری؟ بعد خیافش کمی باز شد لابد میدانست من میدانم دروغ می گوید مدت های مدیدی بود با هم کار می کردیم خب آره کمی سردرد دارم. لوله ها بده وزشند. خیلی زود. از صندلی به تخت منتقلش کردم و وسایل را آماده کردم. امروز رو گلوکه یه وزش کرد. نکرد. اخم کرده بود و کمی معذب به نظر می رسید. دیشب هم. چی؟ نبزش را گرفتم. وسایل فشار خون را آوردم. فشار خونش حسابی بالا بود. وقتی دستم را رو روی پیشانیش گذاشتم، کف دستم از نم عرق کمی خیس شد. رفتم از توی قفسه دارو بیاورم. داروی گشاد رگ یه توی آب ریختم دادم بخورد. مواظب بودم تا قطره آخرش را سر بکشد. بعد زیر بغلش را گرفتم، پاهایش را در یک طرف تخت گذاشتم و سری، لوله ها را عوض کردم. تمام مدت هم حواسم به او بود. اتونومیک دیس آره. اتونومیک دیس بدترین کابوس ما بود. واکنش شدید بدن ویل به درد ناراحتی یا سوند تخلیه نشده. تلاش بیهوده و نابجای سیستم عصبی آسیب دیده برای حفظ کنترل. یک دفعه پیش می آمد و بدن را از هم می پاشید. رنگ ویل پرید و تنفس های سخت بود پوستت چطوره؟ کمی میسوزه؟ دیدت؟ خوب مرد، فکر می کنی باید بریم بیمارستان؟ نیتن ده دقیقه صبر کن خودت هر کاری لازم بود کردی فقط ده دقیقه صبر کن چشمانش رو بست دوباره فشار خونش رو کنترل کردم. نمیدانستم تا کی باید صبر کنم بعد آمبولانس خبر کنم. از اتونومیک دیس رفلکسیا به شدت وحشت داشتم چون عاقبت کار معلوم نبود. قبلا هم یک بار دو چارش شده بود. همان اولی که تازه کارم را شروع کرده بودم. کارش به بیمارستان کشیده و درست خوابیده بود. نهتن اگه حس کردم مشکلی هست. خودم بهت میگم. نفس عمیقی کشید. کمکش کردن به پشت بخوابد. حالا سرش کنار سر تخت بود. به من گفت که لو چنان مست شده بود که نمیخواست ریز کند و با لوله را عوض کند. معلوم نبود چه بلایی سرم بیاره. میخندید و حرف میزد. میگفت که فقط نیم ساعت طول کشید تا لو از صندلی به تخت منتقلش کند. دوبار هم هر دو افتادن زمین. خوشبختانه هر دو اینقدر مست بودیم که هیچی حالیمون نشد با این همه لو اینقدر حضور ذهن داشت که به پذیرش آتل زنگ بزند تقاضای کمک کرده بودن تا ویل را بلند کنند یارو رو خوبی بود لو اولش مخالفت کرد بهش انعام پنجا پندی بدم میدونستم که بدجوری جوری کرده چون فوری قبول کرد وقتی <تصف> سرانجام لو او را ترک کرد ویل نگران بود که ماباد لو نتواند خودش را به اتاقش برساند. لو جلوی چشمش ظاهر میشد که لوله شده و مثل یک توپ کوچک قرمز از پله ها قل می خورد. در آن لحظه احساس میکردم چندان نگران لو نشدم. ویل رفیق به نظرم دفعه بعدی کمی بیشتر نگران خودت باش. قبول؟ نه خوبم، چی چیم نیست؟ حالا بهتره. همینطور که نبزش را میگرفتم، سنگینی نگاهش را رو روی خودم حس میکردم البته لو هیچ تقصیری نداشت فشار خونش پایین آمده و رنگ چهرش طبیعی شده بود. نفسم را رها کردم بیان که خودم متوجه باشم در سینه حبس کرده بودم. کمی گپ زدیم زمان سپری میشد و اواع به روال عادی برمیگشت در مورد حوادث روز قبل حرف زدیم ظاهرا ذره هم بابت دوست دختر سابقش ناراحت نبود حرف زیادی در این باره نزد، با اینکه کاملا خسته به نظر می رسید روحیش خوب بود مچه دستش را ول کردم راستی؟ چه خالکوبی خوبی نگاه شیطنت به من کرد با وجود عرقی که کرده بود و دردی که داشت حالتش جوری بود که انگار ذهنش جای دیگر است و به ناراحتی‌هایش هایش فکر نمی کند. همش فکرم به خانم ترینر می‌رفت. که اگر فهمیده بود هیچ وقت اینجور جور رخ راه از من قول گرفت که چیزی در مورد حوادث روز عروسی به مادرش نگویم. من هم نگفتم بعد از ظهر وقتی لو برگشت بدجور ساکت بود. رنگش هم پریده بود. موهایش را پشت سر جمع کرد و, تر و تمیز آمده بود. میخواست ظاهر معقولی به خودش بگیرد. اما اندکی بعد مطمئن شدم مشکلش فقط خماری نیست. ویل یکسره از لو می پرسید که چرا اینقدر ساکت است. لو بالاخره جواب داد: آره، حالا فهمیدم که درست نبود شب بیرون باشم. حالا که تازه رفتم و دارم با دوست پسرم زندگی میکنم، ظاهرا داشت شوخی کرد وقتی این را می گفت لب لبخند بر لب داشت. اما زورکی بود. من و ویل هر دو متوجه بودیم که مطلبی جدی پشت آن است. نمی توانستم دوست سرش را سرزنش کنم، نمی خواستم هم در مورد برنگشتن به خانه فکر دیگری بکنم، حتی اگر این مرد یک معلول باشد. نگاهی که دوست سرش به لو داشت، با نگاه ویل به او فرق می کرد. بعد از ظهر کار زیادی نکردیم، لو کول پشتی ویل را خالی کرد. اغلام مجانی هتل. مثل شامپو، نرم کننده، بسته نخ، سوزن و کلاه دوش همه را در آورد. لو گفت نخند کلی پول دادیم. ویل پول کارخانه شامپو سازی را داد. نشستیم و یک فیلم محیج شاپانی دیدیم. ویل می گفت دیدن این فیلم بعد از خماری خوب است. تمام مدت داروبر ویل بودم. بخشی به این خاطر که میخواستم فشار خونش را در کنترل داشته باشم. راستش را بخواهید بخشی هم چون میخواستم سر و گوشی به آب بدهم دوست داشتم واکنشش را ببینم وقتی گفتم که میخواهم کنارشان بمانم ویل گفت جدی؟ از میازاکی کی خوشت میاید؟ بعد سری خودش را جمع کرد و گفت که البته باید هم خوشت بیاید چون فیلم است. اما حس دیگری وجود داشت صادقانه بگویم برای ویل خوشحال بودم چون مدتی فکرش مشغول میشد و به آن مرد فکر میکرد. بنابر این نشستیم و فیلم تماشا کردیم. پرده ها را کشیدیم، تلفن را قطع کردیم و نشستیم کارتون عجیب و غریبی دیدیم که درباره دختری بود که کارش به دنیای موازی کشید. موجودات عجیب و غریبی هم داشت. نصفشان طوری بودند که نمیشد گفت خوب هستند یا بد. لو کنار ویل نشست و نوشیدنی را میداد چشمش رو هی پاک می کرد. مثل اینکه چیزی تویش رفته بود. خوب بود واقعا، گرچه ته دلم نگران بودن که چه خواهد شد. بعد از اینکه لو پردهها را کشید و برایمان چای آورد، نگاهی بین او و ویل رد و بدل شد. مثل نگاهی که دو نفر با تردید به هم میکنند تا راز میانشان را به طرف سوم بگویند یا نه. بعد گفتند که قصد سفر دارند. ده روز بعد هنوز دقیقاً نمیدانند کجا ولی به احتمال قوی راه دور خواهد بود. پرسیدند می توانم بروم و کمک کنم؟ گفتم نیکی و پرسش؟ باید به این دختر آفرین می گفتم. اگر چهار ماه پیش به من می گفتم که ما ویل رو از چهار دیواری بیرون می کشیم و به سفر راه دور می بریم می گفتم که عقلتان را از دست دادید. البته در مورد مراقبت‌های پزشکی قبل قبل سفر با لو حرف زدم. اگر دور از آب و آبادی دچار مشکلی می چطور؟ نباید دوباره مثل آن دفعه اشتباه می کردیم. حتی به خانوم ترینر هم گفتند. درست همان موقع که لو آزمه رفتم بود. ویل طوری موضوع را مطرح کرد که انگار داشت میگفت برای پیاده روی به اطراف قلعه می و چیزی مهمتر از آن نیست. باید بگویم که از خوشحالی داشتم پردر می آوردم. همه ی پولم را در سایت پاکر باخته بودم و هیچ بهرنامه برای تعطیلات نداشتم. حتی به لو هم دیگر ایراد نمی نمیگرم که چرا به ویل گوش داد وقتی گفت که احتیاجی نیست لوله ها را عوض کند. باور کنید: من سر این موضوع کلی هم مسخر بازی درآورده بودم، جوری که دیگر بد به نظر نمی رسید. وقتی هم داشتم کتم را می پوشیدم با خودم زمزمه میکردم. و سخت مشتاق دیدن دریاهای آبی و شنهای سفید بودم حتی در این فکر بودم که شاید همزمان بتوانم دیدار کوتاهی از خانوادم در آکفیلد بکنم و سپس آنها را دیدم خانم ترینر بیرون در پشتی ایستاده بود و لو پشت فرمان اتومبیل منتظر بود تا راه بگیرد و وارد خیابان شود نمیدانم چه حرفهایی بینشان رد و بدل شد ولی میدیدم که هر دو هبست هستند من فقط جمله آخر رو شنیدم که به گمانم همان کافی بود خانم ترینر گفت لو امیدوارم بدانی داری چه کار میکنی